صفحه چهار جابد پرسید: «بچه کجاست؟ عبو تراب گفت: «بچه هست؟ مشالله سر ما رو گنده چقدر چقدرم چاق شده؟ هزار مشالله. از خوشحالی لرزید داشت میکوبید که وارد باغ شود که عبو تراب جله او را گرفت. بابا حوصله کن. کارو خراب نکن. پس حالا چه باید بکنیم؟ تو دویست نداری بهشون بدی؟ به تخمه چشمهای جاوید نگاه کرد، انگاری که باور نمی‌کرد که جاوید به او راست گفته باشد و پول بیشتری داشت. جاوید هم به چشمهای تنگ ابوتراب نگریست، در اینجا هم از بی‌ایمانی و تیر دلی او اندوهگین شد. گفت اینجاست، تمام دارایی من، تو که خوب می دانی من چقدر دارم، صد و شست و پنج. ابوتراب گفت، بزار من برگردم بازم یه تقلای دیگه ای بکنم. زبونم مو در آورد. جاوید گفت، پول را میخواهی خواهی ببری نشان بدی؟ ابو تراب گفت، نه پسر، خر و صاف و ساده نباش، پول ببینن هرس و تمعشون گل میکنه. لام از سبای خدا نشناس. جاوید گفت، هرجور شما صلاح بدانی. ابو تراب گفت، پول و قایم کن تا من برگردم، بشین همون پشت. باز میان دلنگه در چوبی باغ غیب شد. جاوید باز تنها نشست، مجدایش را گره نمود، به آسمان بلند کرد، در هوا لرزاند، همه بدنش نیز می لرزید. دعا کرد، و از ایزد، پروردگارش خواست، این یک ساعت هم زود بگذرد، اهورا مزداعه و یس بابه چهنمی، تمام آفرینش بخشش توست، مرا یاوری کن و این یک ساعت را هرچ زودتر به خوبی و نیکی به پایان برسان. این بار مدت درازتری گذشت تا عبو تراب دوباره سر و پیدا شد. انگاره داره درست میشه به حق عبول فزق. جاوید لبخندی زد و خدا را سپاس کرد. پرسید کار به کجا رسیده؟ ابوتراب گفت فعلا خدا خواسته اگه حضرت عباس زیرش رو امضا کنه. گفتم صد و پنجاه بیشتر نداره. هنوز نکنال دارن اما انگار نرم شدن. من شاید پدر سوخته ها رو راضی کنم، تو پونزده را نگه دار واسه خرج سفرتون. جاوید پول را از جیبش در اما لحظه که میخواست آن را به ابوتراب رد کند، به چشمهای او نگاه کرد. ابوتراب گفت، بابا دل بد نکن، ما چقدر زحمت کشیدیم، تا اینجا انقدر عضوبت کشیدیم، بذار تا تنورداغه بشست کنیم. جاوید هنوز دو دل بود. بابا من کجا دارم برم؟ مگه تو اینجا پشت در ننشستی مگه چاقوی منم تو جیب تو نیست من تو عمرم هزار رقم بدی و معصیت کردم مال زن پیرزن رو خوردم آدم کشتم، بیناموسی کردم خونه آتیش زدم اما امروز میخوام این ثواب رو در راه خدا بکنم این بچه رو از دست این های خسیس نکبت در بیارم و تو هم به آپدیت برسی بد میکنم دارم معامله رو جوش میدم نمیذارم بگیرن لختت کنن جاوید هنوز دو دل بود ابو گفت، بابا تو همین پشت در باغ بگیر بشین، من از کجا میتونم فرار کنم، من که نمیتونم در برم میتونم، دفعه دیگه که من از این در اومدم بیرون با آبجیت میام بیرون، اگه دفعه بعدی که اومدم نیاوردمش یه توف بنداز تو این ریشای سفید من، با اون چوب بکوب تو سرم، چاقو رو وردار تیکه تیکم کن، جاوید با اشتیاق و دلهورهی که داشت دلش را آشوب میکرد، دست کرد مقدار پولی را که برای اصدالله خان خواسته بود، از جیبش در و به عبو تراب داد. عبو تراب پول را گرفت گفت، آبجیتم حالش خوبه، الان میارمش میبینی. جاوید گفت، عجله کن. عبو تراب گفت، مبارکه، ایشانا به خوبی و خوشی پیر بشین. جاوید گفت، ممنونم، برو برو، عجله کن. ابو تراب گفت شیرینی منم یادت نره جاوید گفت تو برو بچه رو بیار این پانزدهتا هم مال توست ابو تراب گفت نه من همشو نمیگیرم خرج سفرتون چی نه خوبیت نداره جاوید گفت از یک راهی پیدا می کنیم شما برو عجله کن ابو تراب گفت نه همشو من نمیگیرم به دست و به جیب جاوید نگاه کرد جوید دو تا پنج تومانی دیگر توی جیب او فرو کرد گفت: برو عجله کن. ابووت تراب دوباره به درون باغ فرو رفت. برخلاف تصورش این دفعه انتظارش از دو مرتبه پیش هم بیشتر طول کشید. دقیقه های کند بعد از ظهر میگذشت و او چشمش به در چوبی پوسیده باغ خشک شده بود. آفتاب داغتر شده بود کوچه خالی هم که جلو آن بیابانی خوش بود. زیر آفتاب سوخته و فنا شده نمود. دیگر تک و توک دهاتیهای پا و حتی گاوها و بوقاله ها هم به چشم نمیخوردند. جاوید خودش خسته و تشنه و گرسنه بود اما جرأت حرکت از جلوی در باغ را نداشت فکر کرد ابوتراب باید مشغول بگونگو و چانه زدن باشد فکر کرد باید دعوایشان شده باشد از روی سکوی پشت دیوار بلند شد آمد جلو در باغ ایستاد. گوش داد: صدای از درون باغ آمد، از لای در باغ را نگاه کرد. میان درختها فقط صدای آب جوی باریکی را شنید. هنوز می ترسید وارد باغ شود نمیخواست معامله را به هم بزند. باز صبر کرد. پشت دیوار باغ ایستاد، راه رفت، ایستاد. این پاام پا شد. وقتی یکی دو ساعت کشنده دیگر گذشت و خبری نشد، جاوید با نگرانی آمد لای در را بیشتر باز کرد. ترسید نکند ابو طراب در گیردار دعوا با دهاتی بلایی سرش آمده باشد. از لای در به درون باغ لقصید. قسمت جلو باغ جز اندک درخت و یک جوی آب چیزی نبود. از راه باریکی که بین درخت ها بود جلو رفت. دو سمت باغ، دیوار کاهگلی بود، جاوید حد زد، اتاقها در انتهای باغ باشد، آهسته آهسته پیش رفت، به ته باغ رسید، ایستاد، سرش را به این سو آن سوچرخاند، در انتهای باغ هم جز دیوار کاهگلی چیزی نبود، باغ قطعه زمینی بود که بین چهار تا دیوار کاهگلی محصور شده بود، در یک گوشه باغ، قسمتی از دیوار خراب شده و ریخته بود و سوراخ پت و پهنی ایجاد شده بود که یک نفر به آسانی می توانست از آنجا فرار کند. جاوید با چوب و چاقوب به طرف سوراخ دیوار باغ دوید. از دیوار بالا رفت. پشت دیوار هم کوچه خالی دیگری بود که به انتهای دیگر دشت می رفت و اثری از ابوتراب نبود. پنجاه یک صفحه 238 در تاریکی توی تخت خوابش روی صورتش افتاده بود. مشتهایش گره بود. سرش داغ بود و چشمهایش پر از اشک. شب، همه شب همین گونه میماند تا سپیده بزند بدون اینکه خوابش ببرد. یک ماه از دروغ ابوتراب و باغ خالی امامزاده معصوم گذشته بود. و در این مدت مانند امشب او یک ثانیه هم خواب به چشمش نرفته بود. هفت سال خون خورده بود و دنیای بدبختی ها دور سرش چرخیده روی مغزش خورد شده بود. در این شبها او باز خودش را در همان نقطه توهی و سیاه پرگار دایره میافت. با روحی توهی و کیسه توهی تر باز گوشه اتاق نوکری افتاده بود. و اکنون فقط خود ملک آرامانده بود. ملک آرا تنها آدمی بود که می توانست به او از افسانه خبر درستی بدهد، و ملک آرا هم این روزها ناپیدا بود، چون خبر امکان توقیف و محاکمهش در شهر پیچیده بود. در عرض این یک ماه او هر روز یک سر هم به محله گود زنبورت دنبال ابو تراب رفته بود. ابو تراب هم ناپدید بود، هیچ کس او را در شهر ندیده بود. میگفتند به شاهزاده عبدالعظیم رفته قایم شده چون دزدی کرده بود در این مدت چند مرد مرگومیر هم پیش آمد اول فوت تاج خانم در قم اتفاق افتاد زن ملک آرام مدتی بود که برای شفای سرطان پستانش مجاور حرم حضرت معصومه شده بود میگفتند ملک آرا پس از مرگ زنش مخفیانه به قم رفته بود و ختم مشابه هفت خیلی مفصل برای همسر مرحومش راه انداخته بود بعد مرگ و دفن بیسر و صدای رقیه به گم پیش آمده بود بعد مرگ مشتلی پیر شوهر شاهباجی آشپزپاشی پیش آمده بود مرگ هم وقتی میآمد مثل بدبختی های دیگر مانند سیل بیرحم و خانمان برانداز میآمد اما نه مرگ ها، نه خبر قطعی صدور حکم توقیف ملک آرا، و نه حتی همدردی گهگاهی سرعی خانم، هیچ کدام توهی بودن دردناک روح او را تکان نمیداد. او فقط ملک آرا را میخواست خواست که چند ساعت با او بنشیند و آخرین حرف را در مورد خواهرش از دهان ملک آرا بشنود. لیلا در این ماه با او، به خصوص پس از مرگ رقیه بگم، وشونت و تلخیه کمتری میکرد شبی که جاوید با دست خالی از امامزاد معصوم و ماجرایش با ابو تراب برگشت لیلا با او دعوا و مرافعه زیادی کرده بود فوشش داده بود گفته بود دلش خنک شده اما روزهای بعد بعد از آنکه جاوید را پاک ویران و بدبخت میدید دیگر چوب به مرده نمیزد و او را در قعر بدبختیش ول کرده بود فریب عبود و راب البته برای جاوید چیزی هولناکتر از فقط دزدیدن پولهای اندوخته ی هفت سالش بود. نتیجه نابود کننده روانی این آخرین خیانت و زخم در مغز جاوید این بود که شاید دیگر افسانهای وجود نداشت. نابود او را کشته بودند یا گم و گور کرده بودند. پیش از این همه به او گفته بودند که باید افسانه را مرده و رفته تلقی کند، به او گفته بودند که دیگر نباید حرفش را بزند، باید فراموشش کند، همه این حرفها را زده بودند به ابو تراب، ابو تراب توی گوش او خوانده بود که افزان زنده است و جاوید فقط حرف او را گوش کرده بود، یا خواسته بود گوش کند، او بود که افزانه را از آن خانه برده بود و سالها به جاوید گفته بود که بچه زنده است و او می کجاست؟ ابو به او فهمانده بود که ملک آرا بچه را به خاطر ساکت نگه داشتن جاوید که پدر و مادرش در خانه ملک آرا کشته شده بودند، مخفی کرده بود. او بود که این هفت سال نقشه دویست تومان و گرفتن بچه را در گوش جاوید خانده بود. و حالا فرار ابو و دروغ بودن تمام حرفها و وجود ابو وجود افسانه را در روح جاوید تقریبا کشته بود. این شبها و روزها در کورترین روزنه های روحش فقط همین یک امید واهی مانده بود که پیش از که ملک آرا زندانی شود یا از مملکت خارج شود، او به تواند یک جا ملک آرا را برای پنج دقیقه هم که شده ببیند، جلویش بایستد و هر طور شده از سرنوشت خواهر کوچک گم شدهش به طور مطلق از دهان ملک آرا بشود، اما این ملاقات این روزها بعید می‌نمود و بعد کم کم انگار محال به نظر می رسید. روزهای دراز، شبهای بد و هفتههای جانفرسا میگذشت که او ملک آرا را هیچ جا نمیدید. همه کاره خانه های ملک آرا حالا میرزا از اسقرخان مباشر بود. ملک آرا گاهی پنهانی به خانه وزیر دفتر میآمد اما هیچکس کس او را نمیدید. جاوید میشنید که او در باغها یا در خانه‌ای که در سالهای اخیر در خیابان بهار خریده بود به سر میبرد. هیچ کس هیچ وقت درست نمیدانست ملک آرا کجاست؟ آنهایی هم که میدانستند یا نمی گفتند یا دروغ میگفتند. شبها روی صورت میافتاد تا صبح فکر میکرد و بیخوابی و فکر بد در مغزش مانند آتش چرخانی که در دست عجوزه دیوانهای در هوای طوفانی شب بی توقف شود دبران داشت. در محله و بین مردمی مبارزه کرده و زخم خورده بود که در آنجا و بین قاطبه آنها چیزی که وجود نداشت، شرف، آبرو، ایمان، درستی و خداشناسی بود. سودپرستی، آز و شمردن و تمسخر هستی حاکم بر همه چیز و انگیزه های آنی، دروغ و نادانی همه چیز را گرفته بود. در گذشته پیران خانواده و کیش او را با ترس گوشزد کرده بودند، هشدار داده بودند که چه بلاها و دامهایی در این دنیا سر راه تک, تک آنها هست. اما تا این اندازه شنیده بود که برای هر فرد زرتشتی با ایمان زندگی یک مبارزه پیگیر با دروغ احریمن و زشتیها و یک کوشش استوار در پا برجا کردن راستی هاست. اما آیا در وضع دنیای فعلی این امکان پذیر بود؟ آموزش های نخستین پانزده سال زندگی این پایه فکری را در مقصه او فرو کرده بود که در این جهان در نهاد آدمیزاد، گوهری از داد و از نیکی و مهر وجود دارد. پروردگار به آدمیزاد برتر از دام و دد و خزنده و پرنده خرد و مقصی بخشایش کرده بود که از کار بد رنج میبرد و از کار نیک شادی روان احساس میکرد. و این تمام سخن بود. در این شبهای بیخوابی که در ژرف گیر ودار مبارزش بود احساس میکرد که این گوهر اگر بود در نهاد او مرده بود یا در حال مردن بود. همانگونه که در مردم این محله گوهر آدمی مرده و خاک شده بود. اکنون پوچی دنیا پایان سخن بود فریب زمین روشنی آخر بود می‌ترسید اندازه و دهشتناک می‌ترسید برای نخواستیم بار در زندگانیش به خوف داشت از فرو ریختن نهایی پایه‌های فکری خودش می‌ترسید در پانزده سالگی وقتی مادرش مرد و خواهرش را بردند و خودش با پاهای شکسته گوشه باغ باق خانم به صورت یک نوکر اسیر افتاده بود، یک بار این سقوط پیش آمده بود. اما اکنون وقتی سقوط او چیز دیگری بود. آن دوره یک شکست و ترس بچگانه بود. این بار سقوط و یعصه او شکست نهایی به نظر می رسید. نه او را شکسته بودند، از پا انداخته بودند و با لگت زیر خات لهش کرده بودند، بلکه او اکنون داشت از درون خودش هم می مرد. دیگر اعتبار نداشت و این حقیقتی بود. آیین زرتشتی و گذشته هم اعتبار نداشت. برای آیندهش هم اعتباری نمی و برای آینده یکیش زرتشتی هم اعتباری نمی برای دنیای فکری و اخلاقی آینده مردم این سرزمین هم اعتباری نمیدید و به مرور در یعص و نومیدی مطلقی فرو میرفت. و تناقض اینجا بود که این همان ترس یعص و نومیدی بود که در تک تک مردم دوروبرش هم بود. در ملک آرا هم یک جور نومیدی از وضع و ترس بود، در لیلا هم یک جور ناله و نومیدی و ترس وجود داشت. در همه ناله و نومیدی و ترس بود دیرم آنها بدون اینکه از اول ایمان درستی داشته باشند در این ترس و یز فرو رفته بودند یا آیا اول ایمانی چیزی داشتند از اینها بدتر جاوید از این میترسید که این ترس و یزم لابد جهانی بود و ابدی بود چه در وجود او و چه در وجود بقیه آدمهای این جهان یعصان و تیر دلی و ناباوری سرشت روحی و راه زندگی و محکومیت این دنیا میشد. جاوید از اینها میترسید در پایان این دوره شوم، شبیه که با چشمهای خودش در روزنامه خواند که قرار دستگیری و جلب فوری ملک آرا به کلانتری محل ابلاغ شده بود، برای اولین بار پس از یک ماه و خورده بی بالاخره آن شب اندک خوابی به چشمش آمد. اما این خبر هم دردی را راستی برای او دوانه می کرد. ملک گارا اکنون فراری و پنهان بود. این بار هم باز زرتشت بزرگ بود که با پیام خود به بلند کردن و پناه دادن جاوید آمد. خواب آن شب و سخنان آن شب پیر مرد سفید پوش، مانند روی یک سند و ای روی یک آینه در لوح مغز جاوید مانده است، آینه ای که از آن شب به بعد تا پایان زندگیش با خود به همه جا برد. خوابهای آن شب او با همان کابوزهای تکرار شونده آغاز شد، درباره افسانه و درباره قناط قنات آب آلوده که از زیر زمین به ابدیت میرفت. و او تشنه بود و با مرگ تدریجی می نوشید، بعد باز پیرمرد سفیدپوش سفید پوش دشتهای ایران آمد، و امشب جاوید کوچکترین تردیدی نداشت که این مرد که بود، و پیام پیرمرد کلمه به کلمه در لوه خاطر او نقش بست. به تو از اینجا خواهی رفت، به از این خانه بد بیرون خواهی رفت و به دنیای تازهی خواهی رسید. تو از این مکان که برزخ گذرانیست و دست دیو هاست می گذری. در جایی که در آینده به آن میرسی دیو نخواهی یافت چون دیگر دروغ نخواهد بود. دیگر بدنت رنج نخواهد بود چون همه جان و روان خواهی بود. دیگر در تاریکی نخواهی ماند چون همه نور خواهی بود. دیگر زشتی نخواهی دید چون چشمان تو پر از زیبایی خواهد بود. دیگر خدانشناسی نخواهی یافت، چون همه چیز اهورا خواهد بود. تو از آتشکده آمدی، از خانواده و گوهر پاک آمدی، رنجهای این دوران تو از یورش روح نابود کننده اهریمن بود. تو باید با روح نابود کننده مبارزه کنی، باید نبرد کنی و از آین پاک پاسداری کنی. یک بار که او را نابود کردی، دیگر بدی، دروغ، درد، تاریکی، زشتی و خدانشناسی از بین خواهد رفت. و بهترین بهره های مینوی همه نیکی ها، راستی ها، شادیها، نورها، زیبایی ها که از هورام از از آن تو خواهد بود. تو از این برزخ تنگ می‌گذری و در جهان بیکران در زمان بی زمان زندگی خواهی کرد. تو به پروردگارت خواهی رسید. تو به پروردگارت که همه چیزه است خواهی پیبست، در مرکز این دنیای محدود نترس در چشم تیره این شب تاریک که تخم مرگ و نابودی تو را کاشته اند نترست. عزیز من نترس فرجام خوب از آن تو خواهد بود، چشم پروردگار به توست، او که نگهدارنده تو است از تو می خواهد که از این تاریکی با درستی و پاکی بیرون بیایی، آزاد شوی و در ابدیت بیکران به او برسی باید به او برسی نتش؟ وقتی از خواب بیدار شد چشمهایش پر از عش بود. اما باز خودش را یافته بود و میدانست در این نقطه از تاریخ جهان او خودش کجاست و چه باید بکند؟ پنجاه و دو. صفحه دوی و سه از آن روز با این رای و اراده در خانه ملک آرا ماند. تا وقتی ملک آرا را گرفتند و به محاکمه کشیدند. جاوید پیش برود و تمام سرگذشت و داستان خودش را برای بازپرس و قضاعت بگوید و بالاتر از هر چیز ادعای پس گرفتن خواهرش را از ملک آرا بکند و مرده یا زنده افسانه را بخواهد. تمام خانه بزرگ ملک آرا، اکنون خالی، بیجان و سوت و کور افتاده بود، درگاهی ها و درهای اتاق های پر از اساسه مجلل بسته بودند، در باغ نیز بسته بود، قفل بود، کلیدها یک سری پیش خود ملک آرا بود، یک سری پیش سرای خانم، میرز و از قرخان نیز کلید درهای خانه و باغ را داشت، گاهی سر میزد، گرچه او هم این روزها کم پیدا بود، جاوید هر روز از راه دالان به حیات بزرگ می رفت. از توی ایوان از پشت شیشه ها درون اتاق تالار و بقیه اتاقهای جلو را نگاه می کرد، سرکشی می کرد. همه جا خاموش، ساکت، خاک گرفته و بی افتاده بودند، حوز بزرگ فقط یک وجب آب سبز و بعد پوشیده تهش داشت، باقچه ها تمام باغ منظره محسون و پیدا کرده بود. در حیات بیرونی هم حالا جز لیلا فقط شاهباجی مانده بود. کلفت پیر از صبح تا شب ماتم زده و واخورده با لباس سیاه جلوی در آشپسخانه مینشست قلیان میکشید و آه میکشید. آشپزخانه آشپسخانه و آبدارخانه هم صد و خالی افتاده بودند. روز اول، جاوید به در خانه میرزا اصقرخان رفت تا از حال و اوضاع ملک آرا با خبر شود. میرزا اصقرخان این روزها به اسم اصقراغا مباشری صبحها برای خودش در دادگستری شغل اداری داشت. می گفت با اجازه ملک آرا. اصرها هم سر کوچه چاله سرش به بنایی مغازه هایش گرم بود. میرزا از از ملک آرا هیچ خبر نداشت و خودش را کنار می کشید و جوابهای سربالا بالا میداد. به جاوید گفت اگر از این به بعد به پول مول یا به هر چیز دیگری احتیاج داشته باشد، باید به حضور آقای دکتر کیومرس خان که حالا از مدیر های وزارت بهداری شده بود یا به حضور سرکار الیه سرعی خانم مشرف شود. خودش از ملک آرا دستور تازه‌ای نداشت. دیگر حقوق و مواجبی نمی گرفت. اما هنوز دفتر حضرت اشرف توی دهان چاپلوس و ترسویش با کلی کمتراقل می خورد. جاوید پول نمیخواست، هنوز اندکی از پول خرج خانه که اول برج پیش به او داده شده بود داشت. لیلا و شاهباجی هم چنان خرجی نداشتند. اشرف به گودهای زنبورک خانه رفت. باز پی عبو تراب گشت، نه به این امید که پولش را پس بگیرد، بلکه بیشتر به امید این که تراب را پیدا کند، با او حرف بزند، حقیقت را از دهانش در بیاورد. اما از عبو تراب هم اثری نبود، از خانه عبو تراب هم حرف و خبری در نمی آمد. مادر پیر عبو تراب هم نای حرف زدن نداشت. عبو تراب دو سه تا زن گرفته بود که مرده بودند، و هرگز بچه دار نشده بودند، هیچکس کس آن روزها نمیدانست او کجاست، از حرفهای اهل خانه و محله گود و دیگران در گذر وزیر دفتر و چاله سار برمی آمد که ابو پس از پول کلانی که گیرش آمده بود و خودش را به عرق و تریاک سفتی بسته بود، بعد بد جوری مریض شده بود، رفته بود جایی افتاده بود. شاید از گوشه یک عرق فروشی به مریضخانه‌ای برده بودنش یا شاید گوشه شیرکشخانه‌ای مرده بود شب در سکوت همیشگی با لیلا شام خورد لیلا هم این روزها جاوید را به حال خودش گذاشته بود در فکر و خیال‌های خودش بود به او گفته بود که با او به یزد نخواهد آمد همینجا در تهران خواهد ماند طلاق هم فعلا نمی‌خواست چون کسی دیگری جای دیگری نداشت، با گذشته لکهداری داری که داشت، هنوز یاد سابقه و اسمش در ذهن و در دهانهای آدمهای قدیمی محل با کفر و ننگ یاد می شد. تنها پناهش فعلا جاوید بود، گرچه هیچ تفاهم روحی و ارتباط بدنی بین آنها نبود، جاوید تا روزی که توانست از او نگهداری کرد. صبح روز بعد اتفاق بزرگ و تازه ای افتاد که جاوید انتظارش را داشت، اما نه به این شکل و خشونت. صبح زود سه تا معمور شهربانی و یک مرد دیگر که کت و کلاه پهلوی داشت، برای بازپرسی و جستجوی ملک آرا آمدند و محکم و پی در, پی در زدند. جاوید گیوه هایش را برکشید. از در حیات بیرونی آمد و به آنها اطلاع داد که ملک آرا در خانه نیست. و مدت هاست نبوده و خودش را معرفی کرد. مامورین او را مجبور کردند در باغ را باز کند، چون میخواستند درون آن خانه را بگردند، تفتیش کنند. جاوید به خانه سرای خانم و دکتر کیو خان رفت که به آنها خبر بدهد یا کلیدها را بیاورد. دکتر کیو خان در خانه نبود و جاوید به آرامی موضوع آمدن مامورین را به سرای خانم خبر داد. کلید اتاقهای آن حیات را گرفت و تون تا آنجا که پاهای رنجورش اجازه میداد به و حیات ملک آرا برگشت و به صاحب منصب جوانی که رئیس معمورین بود داد. بعد ساهای خانم هم با چادر به آنها پیوست. اما معمورین فقط با خود ملک آرا کار داشتند. آنها کم حرف و جدی بودند. گرچه هنوز به نام ملک آرا هم احترام میگذاشتند اما معلوم بود سنبهشان پرزور است و امروز برای گرفتن نظری و پول چایی نیامده بودند. مامورین دنبال جاوید تمام اتاقها، صندوق خانه ها، نمازخانه ها و حتی مطبخ و اتاقهای حیات بزرگ را گشتند. بعد حیات و اتاقهای سرعی خانم را هم گردند. دنبال میزا از کارخانه فرستادند، او را هم آوردند، او را نیز سال پیچ کردند. نزدیک ظهر معمورین از کارهای خود صورت مجلس برداشتند. بعد دو نفر مامور دیگر با یک بازپرس کچلواری دیگر هم آمدند. مامورین اکنون اتاقهای حیات و همچنین در بزرگ باغ را بستند، قفل زدند و محرموم دولتی کردند. به حیات کوچک و اتاقهای مستخدمین امروز کاری نداشتند، این حیات را فعلا آزاد گذاشتند. اصل از صاحب منصبی که رئیس آنها بود، همه جای حیاتها را برای آخرین بار تفتیش کرد. معمور تفنگداری هم جلوه در باغ گذاشت و سرانجام رفتند. چشمهای حیرت‌زده جاوید از امروز ناگهان چیزهای تازه می‌دید. دشمن بزرگ زندگی خود را می دید که مغلوب گرفتار و منتر شده بود، یا دست کم خانه و زندگیش گرفتار و منتر شده بود. مردی که سالها در این خانه، در این محله برای خودش سلطنت کرده بود، زندگیها را توی دستش گرفته بود، چلانده بود، عوض کرده بود، خونها ریخته بود، تجاوزها کرده بود و بزل و بخششها کرده بود، امروز یک سایه فراری بود.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 خانه دوستان ملک آرا را می گشتند. حتی ریخته بودند خانه...